بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الله الله الله کنم که بحث در در و آرز آنبا مفهوم در در در آرز آنبا مفهوم چه شد که غیر از مواحظه اومی شده در آرز خاص هست این بحث مفهومی که آیا به خاطر خصوصیت مفهومی این شمون تارز فرق میکنه یا نه؟ چند وقت تا بایان که این شما در آخر هم دو حرف بینه رو دستیبن بیمکنم رسیدی به کلابی که من به محرمه اداری تقریبا بوده این منعی شدیلی کلمات و اصلابشون سمد سمد, سمد به بعد ایشون ترموندن که در این تفسیری که دادن سابقا این آم و مفهوم هر دو به بردن بخواه دو به محرمات هشمت هم به اصطلاحیشون اطلاح و سادست هم مختلف بعدم سارت هم در یک کلام واحد و اطلاحیم در کلامه مستنه یعنی به بارد مختلف و من برد توضیح نایش هم در ایشون می فهمونه که اگر متفره باشن هر دو غرز باشن هر دو اطلاح باشن چون هرون در یک روز به این از ظهورن باید حسابان بهشان بیتونن و کلاه مگر اینکه که مناسبات باشه مناسبات کنسوسیات موردی که به حسب مورد اونها حساب میکنه یعنی ایشون به عبارت اخراج دیگر را حل اصولی یک کلی در آنه حل قضیه باید به مناسبات موردی مورد شده و اما برد می به امکان ها مختلفه بسیار فرصا آمنش به وضعی باشه محرومش به و مقدمات حکمت فه امکان های کلام باهر فلا شبه هسته فی تقنیم وضعی حلل اطلاقی مرادشن از وضعی و اطلاقی ظهور ظهوره وضعی بر ظهوره, ظهوره اطلاقی مقدمه این مشهور این عبارت چون ظهور وضعی مستنده به بعض دیگه نکره خاصی دیگه وزمان انجام شده لذاب اون ظهور مونه اما ظهور اصلافش مقدمات حکمت بخواد با وجود این ظهور وضعی مقدمات حکمت حام نیست لحن مقتضا ظهوری تنجزی میاد به خلاف اصلافی این مراد همین توضیح که من کرد ظهور وضعی ظهور کرد یعنی این ظهور من شده. با خطر واد ماستش واد. خوف تری چون شو وادی. یه واد از هر از واد. اون تأثیر نداره مهمش را از به خلاف ال الاخت... اقتداری. به خلاف ال به خلاف ظهور زهور اتلاع را تغییرشان. فینه مختزی معلق، في مختزیه و معلق، علاو علاو البيان. حالا یکی از بيان و و ان فی المقامات مقدم على التعليق. یعنی اون ظهورش معلق است بر مقدمات لن مانعیته او دوری هست مانعیته به اصطلاح اگر ظهور تعلیقی بخواهد شما مقدر هست او نباشه که مقدر این دوری که اصطلاح خودشون تصور میده و من هنه نقول این از ظهور الاطلاقی لای از احل خلیمیه ظهور الاطلاقی نمیشه خلیمه باشه به نصف تقیل از ظهور الوزعی که یوتبه هم به انتصال اتصال بلکلام یا ظل به همون مثاله ای در طبق باید ارس کنند اگر و اما انکانا پی کلامی مستقله ایم تقدی هم اجرا آقال از مثلی و یوتزم ایمان به تقدم زغور الوردی از اطلاقی اگر در دو مستقل باشند که کشون یه همین بیان و بردی تصور کردن ر ان یا ان ان البيان البيان ولو في همون بحثی بود که الله انسان ما رو همین رو که هم متعرض شد اول شد که میگه اگر مختص متصل باشه مانه از انعقاد ظهوره اگر محسس منحسل باشه مانه از وجیه نگوه هکمه علماء از وجیه یعنی دو ظهور در آن پیدا بود اما من گوه هکمه بعد از دو روز بود در اونجا این دومی مانه از وجیه نه مانه از ظهور بله ایش بخواه همه منظر را بگه برشه اون و ما اونجا از کردیم که مشکله ما تفریق بین ظهور و قدیهت مشکله تو نتیجه شید که فرمونی دقیقی ایشان قبول نداره بیشون بیان اینجور دارد میفرموند هنال لوکان البیان المان هنال اطلاق مطلق البیان ولو فی کلام آخر خب ما قبول میدونیم این لوکان این اشکال وارد میشه خب ما همین موردی که ایشان اشکال کرده وارد میکنیم که بیان مطلق بیان و رو در کلام دیگر کنی و کانال بیان المانه آن ظهور ال خصوص البیان فی کلام به تختاتو لام مطلقه فلا یزور الام متفسد به ظهور ال فلا یاهم یاگر الام متفسد به ظهور ال اطلا برقانه من هما ظاهرم به مقصد تنجیزی هر دوشو منعبت میشن و این هزه یعنی به عبایت اخراف شب یکیش باشه چه باشه چه یکیش باشه چون منتصرم این انفساد منشایی میشه که ظهور منعرض باشه وقتی ظهور منعرض شد مثل همون ترزه اول میشه به امکانها ما سفره بر بلکان کلون من هما زاده به مختز تنجیزی منادیشون مختز اینه که هستا مطلب هم تام به دیگه بر بردیگه ای نمیشه اونی که که تام بود اینم تام بوشه و هینه ازن لا مهی سمن ملاحظه تاقو و ظهوره که بین بعد اینجا هم فرمد و روبه ما یختر کدالته ایون به حسب خصوصیات مورد فیتر ما قصه برمیده به موردی ولای کنه ایون تحت وقت نمیشنیم برشی که دابطه ای. اینجا ما درست بکنم. و مع از از ایران به حکم المجمن و, کلام و از ستر مسئل فی حیبن فیتری مقدمات الحکمه خیلی مخلق از هستن حسن اگر این که در موارد گیر دارن اگر هر دو وزی باشن یا هر دو اطلاقی باشن اگر میشه یکیش وزی به اطلاقی باشه به هم منتصری باشن یه گیر نداره وزیر مقدم میکنه اما اگر منتصر باشن بازن گیر داره این خلاصه دیه. صورتی که ایشان برمیدن یعنی دقیقات این اطرا مخواهد مرمومه های آزیا قبل صلاح منصف محفر ارادی مخواهد ما در این مسئله شبیه طبعا در مسئله منصف یا فلسطه یک قاعده کلی نداریم به خلاصه پسیشان مثلا قاعده کلی که آمشون ظهوری لحظی دائما بر محکومی پس میگی شده قرونها ظهور محکوم ظهور تبعیه آم دائما می شده این قاعده کنی قاعده کنی دائما مفهوم بر آم می شرده. چون مفهوم هم وجهه قرون بردیه که به حکمه هر برمان هر جا به حکمه هر برمانی و می شده این دو استلاقا می حل قضیه از یک قاعده عمومی شما ها به این قضیه به قاعده عمومی روی حل بکنیم خلاصه بحث پس بحث در اینجا این است که آیا ما در اینجا با یک پایده عمومی میتونیم مشکل را حل بکنیم یا اضافه بر اون نکاتی که در محکوم و منضوع ملاحظه میشه این مسئله خودش هم خصوصی دیگه هم داره به اون حل نمیشه یعنی فقط مثلا فرسیم بیانو آشان محکوم در محکوم چیه شیشت محکوم ها در محکوم نمیشه بگیر صفحه این مبنه مخصوم مقدمه صفحه این مبنه آم مقدمه اینجوری بگیم؟ اینم یه برایی من یه روز اشاره کرد بگیر اگر شما قاعد شد که مخصوم به لحاظ وضع مخصوم مقدمه اگر قاعد شد اینجور مخصوم مقدمه حکمت آم مقدمه اینم یه مسئله آیا میشه این مسئله رو با یه قاعده کلی هر که ایشون میفهمن نه به تنهایی با یک قاعد کنی هم نمیشه بیگیم که مثلا بگیم این وزیگی اون اطلاقیه با این میشه حلش بکنیم سؤال بگیم اگر هر کدوم وزیگی بود بر اطلاقی مقدم میگه اینم نمیشه به مجرد وزیگی به نمیشه باید یه نکته دیگری و هم در کلام اضافه کرد ما این که اینکه آیا در کلام وارده یا در دو کلام مستقل, مستقل؟ اما که کلامه کلامایی مستره، در که فردشی دو کلام به منزله یک کلام که مستقل به این معناه که دو کلام وارده مستره. مراوغیا به این خصوصیت. هم. با این دو تا نکته حل میکنه. روشن شد. یکی ملاحظه زد به اقتلا، دلالت به زد یا به اقتلا. یکی. دو در کلام وارده یا در دو کلام مستره؟ میگه با ما با مجموعی این دو امور دو ار رو حلش میکنیم اگر هر دو به بعد یا به اطلاق موزن منحظ کلام مجند میشه اگر نیکی وضع اطلاق رو در کلام واضعی مقدمه در دو کلام و باز نم مجند میشه این رحیه تطوری شد راحتی رو لحاظ اصولی خیلی طریق قیام نمی کن بیشتر اجمال و یک فرض مثلا معایزنی اگر حرف بشه اگر اکثر فروز رو بشه خلافی نشمز گرفت چون محفظه ظهور اطلاق هم تمام میشه تنجیزه میشه چون محفظه نی؟ بله ایشو میگه اگر اون قرینه شامل قرینه منفصلن بشه اینجا باز منعبد نمیشه چون ظهورش منعبد اما چون ما قبول نداریم هم قاعده ای کنان ارزگرد هست آقایی در تخصیص مختصر مانع این اعباد در تخصیص مختصر مانع خودجیت ظاهره مانع خودجیت آمده این روزو با همجور فرمان ما هم, هم گفتیم به نظر ما فرمان آزیام این مبنی فرقه مبنی مشهور که قاعده به فرقه پس همه با این مبنی آزیام قصه رو نمیتونن به سور کلی یک حل قضیه به س و به مجرد اینکه ما مبنامون در مفهوم مشخص بکنیم او هم حل نمیکنه کنه موشه اونم قابل حل نیست تأثیر میکنه او حل نهایی نمی کنه. حل نهایی رو بازنی میکردنه اینکه در کلام و یا در دو کلام این افترینه ها است اما ایشون بگه بقیه مورد باز موردی بررسی کنیم اصلاح اما تو فکر برگردیم به فکری بررسی کنیم. دیگه راه و اصولی برای ما بستن مرشن شد یعنی الان فکر می کنیم ردش تفکر شما کاملا داره شفتی میگه که ما یه لفظ بحث اصولی میکنیم شدید بحثی بحثی فلسفی یه لفظ بحث موردی میکنیم میشه موردی که توریه یکی مورد خودش رو حساب میکنیم این خلاصه نظر مبارک مردم آزی اونی که میشه به طور کلی روش تأثیر داشت اونی به نظر اون تأثیر کلی داره یکی اینکه که ظهور وزیگی باشه یا اطلاقی باشه مقدمات این یک نقطه این تأثیر می کنه. یه نکته هم که تأثیر میکنه سلام وارد باشه مستقله این دو نقطه تأثیر داره مجموعه این دو نقطه تأثیر داره در وضعیش باید موردی حساب بکنیم برگردیم به موارد روایات و از روایات چه استقاد می بعدش هم ایشون فهمیدن سا منفی تخصیص عامل کتابی به مطلقی خبر الواقع منطوقا یا مفهوما موافقا و مخالفا من آخر چون برد از آنسوگه این بحث توی تخصیص عموم کتاب به محروم ویسا اخبار بستن میگه بحث دیگریست منجه از الاخبار البته اون هم یک نقطه ایداره یعنی نقطه اینه که ما بعد جل بانیاد داریم که مخالف کتاب رو طرح بکنه گفتن مخالف کتاب حتا به نحوه تخصیص حتا به مخصص من جهت الاخبار الوارده فی طرح مخالف کتاب و اینکه اخبار مخالف کتاب زخرفه که لا يخفى ان شمول هذه الطائفه للمخالف به نحوه العموم و الخصوص مستلزمون للجذب تخصیصها چون در یک در محال خورده دیگه من لنسانه ها آقل همه تخصیص اون روایاتی که میگه مخالف کتاب رو تحقیق کنی یا تحقیق برزنی این قابل تخصیص نیست فلا محیثه من خمله ها ایشو میگن که مراد از اون روایاتی که مخالف با کتاب مراد اون روایاتی که به هم با کتاب مخالفه چون این بحثانه اشاره فرمدن در فرمدن ما بیر جدا نیست. اینشالله این بحث رو ما در دو جا به نحی متعرض شده میشه وقتی بود جده خبری تو وقتی تاروست اینشالله اونجا اگر خدا من توفید جا بگیم زواهر این روایات رو حمل بکنیم بر موافقت با روح کتاب نه موافقت با روح در کتاب رو پیگیریم موافقت با روح او اون شاکروهای کنی که در کتاب آمده مراد از مخالفت هم همین مباینه که ایشون فرمودن یا ارجاعش اون موافقت باشه اینم خلاصه ای نظر ما شاءالایی در دیگه در اینجاش نید در محل خودش متعرض این راهی بود که مرموم آزیه برای حل قلبیه فرمودن شما دیگه صحبتی اینجایسی متعرض یک کلامی از مرموم های بروژه ها بیرد ما شما یک آده احترام میشون کلماتی ایشان را هم به اصلاً من از این نهایه الان میخونم چون یه کمی چون جوان بود در اون وقت بیشتر شعر بیشتری به ساز اباتابوجی بود لما هاتول اصولم تازه چاپ شده لما هاتول اصولم تقریبا اینجا مثل همینه نسخه دیگیا نموداری نمیشه چیزی رو نمیشه مرغم آقای گریز این کتاب چاپ جدید نهایه اصول به شماره تفسیر مرسی پوشش جلد یکو هم شماره تفسیر داره یک و دو همه شمالشون سفیه استرد ایشون در اول بحث کفایه رو گوندن مستادشون چون مرمان شاگرد ایشون بود و عرض شد که در کفایه گفته که اختلاق روی جواز تخصیص مفهوم موافق محل اقتفاق حلال جواز به مفهوم موافق در, اتفاع در مفهوم موافق اتفاقی است در مفهوم مخالفن مخالف اختلاف. حالا یه مختصری ماشون عباراتی که فایرهمون به نیاز به تکرار نداره خدا از اونجوری که ما قبول و اولا ایشون یک نظری با استاد معروفشون مطرح شد و ردی شده اینکه اتفاق از در مفهم ما بعدشون قبول نکردن دعوای اتفاق و اجماع اختلافی است چرا چون الان اینجا ایشون نمیورد اون لم حاصل اصول عبارات عددی رو ورده اینجا نمیورد میشه این در موافق هم اختلافیست کم احوال مستفاد من عبارت احضادی از هز کردن تا مدت ها در وقتهای احضادی باشیه مهمترین کتاب همون اصول ابن حاجب بود ابن حاجب این اصولی کنیده شد احضادی هم شرکی برداره اینکه معالم هم مثلا وقتی که نوشته در وقتی که زمینه های کار همون ابن حاجب و احضادی در معالم اگفتن باشه زیاد از این کتاب یا حالا با ک هم بزرگان متکلمی شده همه سال افزاری مثلاً همه سال فخر و غازی دیگر آن دارن بسید تا مدربا در حوضه های ما مثل همون حوضه های همه بسندن مثل همه ما اون کتاب اصول ابن حاجب هم ابن حاجب سرد و شافیه نمداش کافیه اصولاً دارن این جزای کتاب های معروف و بود ما هم شروع برسته این کافی و شافیش. به مدتی در بزایی ما معروف بود یعنی شهر شافیه شهر نظام نظام نشاره بود و شهر کافیه ماله مولا برحمن جامی ماله به شهر جامعی تو خودها میخوندن شهر بر کافیه ابن حالا به هرزام حال باستان باید که با شهر کافیه محبوم نجوانه ایمه ردی و شهر شافیه ایشون تو من ردی هر دار شهر کرده هم کافیه رو هر کافیه و همون مخالفت ها همون میگن چه اتفاقی بود نه به همون محافظه اتفاقی از برو جردی نظر مبارکشون به همون عبادت چون در عبادت عرضوزی این ملعب حرفیه ایوان تخصیل یه از عبادت از همون شدش مخالفی هست حالا این بحث تر وقتا ما خیلی بارد این بحث نمیشه چون عرضش علمی نداره اجماع رو این میدن خودشون این و همه رجال و نهار رجال و از ماهی باشید نباشید اولا این یک و هر کردیم ما باید در عبارت مفهوم اگر یک تصورتی بکنیم به املا اصولا اصاسا بحث مفهوم که مفرح شد من صابقا ارم اشاره کردم نوزم مجرومش رو اشاره کنیم یه اشاره کردیم صابقا ارم که بحث مفهوم رو به درات منتظم و غیر منتظر مفرح کرده یه نقطه بیگه این با درزاگیه دیگه حسولا میده فرد فرمه قدر از این حفاظ طولانی میشون در اصول تو مراحظ الفاظ میخونی اینا بیان تعدد مدلوله یعنی میخوام بیگم مثل یک کلام چند تا مطلب در میاد که ما در فعرض و شکت داده رو کنیم مثل انگو جنو به ماه آف بیان از جنو میاد پلن یکی در نمی این طرف به وجود ویست این وجود به نمی پنی نیسته این وجود به نمی پنی نیسته نفسی چار. این وجود همینطور این تعدده مریون رو اساس کار افاس اصولی در لواه مثلا این کار اینه در آوردن من مثلا اگر گفت که هم رو و کسان رو تلاسون شهرن هم و انقطاع از سازتو بر کردنه از چی؟ سی ماه. از اون ترد گفت یرزه اولاده همون دو, دو سال 24 ماه 6 ماه یه مندود کلام اینه این میگه اون مجموع استیماه اینم برای دوران شیر دو 24 ماه یه که بحث من یه بحثی اصولی آمد در موید یه دیم دوتا رو پر رو هم بذاریم در مقابل که اهل هم 6 ماه در مقابل در موید بود این دلالتی ایمان، دلالت تنگیش، دلالتی اشابه اینها دفت سر این قسمت و دو تا سه تا چهار تا مزدون در نیاده در نیمون اصلا این چهار که دلالتی رو بود اگر دلالت اکرام شد مزدون دوم اگر نیامده نیست کسی دوم بود این دلالتی مزدون درستی که آیان در اصول داشتن در حیرت همین تعدد یعنی ما تدر باست زهورا در سه اصاسیمون همین تعدد مدلوله یعنی هنر اصولی چون چرا؟ چون بین این تعدد مدلول فوقها آثار در که بار کردن و ممکن است خیلی از بحثای مدلولی رو ما تو علم بیان بیاریم اصطلاح موزه یعنیمونتی مثلا بیاریم اون زمان نبود در این بحث های مجنودی و بحثه دلازه کجا اون تو اصول تو فرضش افتلاف حضا کردن از کنن از سال های 70-80 تا حوضه سال های 70 دوران فقه این در فرضی مسئله افتلاف حضا کردن بعد در این تعداد مجنودها رو منذبت کردن منتجه می کردن سرطرش که همونجور شده این یکی از موارد روشنش یکی از موارد تکرر ممدود بحث مفهومه پس این بحث اساسا رو این جهته که آیا دو ممدود داره یا نداره این تکرر ممدود بعدها در مثل معصوم بشر اکثر که انسان احساس میکنه بیشتر در کلمات اصولی سری این موضوع که آیا لفظ این در لغت عرب یا اگر در موقع فارسی برای دو معنا وضع شده خود دقیق کنیم وضعن دوتا معنا داره. یا برای یک معنا وضع شده یا برای یک معنا وضع شده که اگر مقدماتی یک جالی بشه دوتا معنا در میاد و نه این برسی و بود آیا لحظه؟ رج شده در دو تا بیشتر مطبه کلام روی این بود بیشتر مطبه کلام روی این بود مثلا حیط توصیفی دو تا سو... معناه داره یا یکی مثلا فرصه علا در نوعه حرابی دو تا معناه داره علا خودش رج بعد شده به دو تا معناه <تصف> <تصف> یکی این که میگه این نهایت اون کار بوده که این بردش نبوده خ source بردش نبوده یا نه یکی معنام اونمی که این نهایت از سوره آل امرار تا سوره فرص مثلا هج مونده سوره هج آخری دیگه ناظر ما بعد سوره هج نیست دقت رو کنه این تمام بحث اگر این بحث رو ما روی ریشه بحث رو این بدونیم پس بنابراین تعدده مظلومی که مستنده است به بحثه. یا به مقدمات و یکمه هست کار خوبی پنه دای دیگه هم در دارم کرده اما بحث مفهوم ماخرت مفهوم ماخرت قدد مفهوم توش هست اما به بعض برمه هاییه به نشه اگر روح به پدر مادرزون افنگیم لا تقبل المواهب نه کلامی لا کلمه نه نه نه لا تلبی قبول نه معما نه او نه خاطر لا توه بمانی شنون که کوتاهیش نذ این اگر این معنای دوم باشه این معنای دوم از ملازمات تعریف شده از لوازم کلام فهمیده شده اولویت فهمیده شده یعنی این تعدد مذکور مستند به معنا راست به لفظ و بعد و اطلاق و مدوات احوال نذاره در این دا لا تقول ما اوفن که شما میگی دو دوم هم داره که معنی لا تقول ما اوفن نداره نداره این predicate جون نداره از نه بعد درام نه بعد هم دیدم مفهوم موافقه رو هنوز و, محروم و محروم تو حتی لذا دیدوزم اشاره کناگر میبود که این طوبی کنیم بله مفهوم محافظ را یک یکی مقدار بنا تعداد مدود خب اصلا تعداد مدود تو زدادی ایمان من. اشاره من من. من. تعداد مفهوم. تعداد مفهوم. هم اشاره هم هم هست تنبیه هم هست تعداد مدود تو نو چه لذا خوب بود که یعنیل رو در زدادت غیر منتجه پنشتاشی میگرده کسی ایما و تنبیه و اشاره که مفهوم مخالفه دیگه مفهوم موافقه اولویته چه اولویت میشه اصلا اون نکته ای که اصلا آلبرجری جدی ان اعتراض کرد به اون اینکه بونه آی اون نکته که در مفهوم الان ما محل کلام ماست، این نقطه... ای ما این نکته این در مفهوم ما و مفهوم در مفهوم موافقت نیست و لذا دلیلش همین اشاره که اشاره کردین استاد جون به مفهوم عقلیه دلاته آم لفظیه شاید مراد اون بخش در مفهوم محافظه بوده شون دلاته عقلی فقط محبوم محافظه بشه اون در مفهوم محافظه دکت بکنید دو تا مدلول در میاد اما تعداده مدلول مستنده با اولویت محنا فیلمسه هست رفتی به درد و مقدمات حکمت و وضع و وضعی رفتی بونه ها داره هی. لذا خوب بود آنه و سوریه ها محبوم محافظه در اصطلاح فرمی خودش از مخموم مخالف جدا میکردن دو تا نکته مختلفت ها رفت رفتون هم بیگه در اون نکته محل برس نظر هم بیگه شمایی رو اینجا متعرض شدن ما هم از کنم اگر در اونجا اتفاقی ادعا شده چون نکته اون مسئله اون نکته اقلانی یا رفتی رفت مخالف نداره اگر ادعای اتفاق شده بعد اگه شو اجماع به درد چون قول محسی مازیش درد نمید خب بعد اگه اشکالی ایشان به که کفایی کردن که تقسیموندین که کرده این میفرما خیلی به مالای عرضی علام و حسل در بخم و همدیگه این مختلف میکنی این خیلی من فقط اشاره میکنم آدم مالا شده کنم در تنبیر تکشون شده و عرضش ندار این مسائله من باب صاروز المطلق و و حكم حمل و حمل المطلق على المغير بعد احراز وحد الحک که في سعیتی فهمدیم. بیان ذلك و یک مثال میزنه مثل اینه اگر آمد این نیست باشد الله ما اثبورم لاین اجیس وشی الا ما غیر لونه و او تامه او رائحة این تصویتان خیلی عبارت شیرین هم هست شنگی هم هست محطن خانونی هست الله هم آره تر که در هم آمده به عنوان فتوها در بخواهی آمده باید در کتابای ما هم منطل آمده احتمالاً اصلش عبارت فوقهایی بوده بعد چون مضمون استابس بوده گفتن مثلا بخواهی معصوم علیه یعنی مردمون در کلمات محسومی هست از این مرد نیست که اگر اگر اگر این طور ورده اینطور این طور از کردیم وردهش من توضیح دادم استفد نامه اونت ما اینطور استفاده میکنیم که ما به ما و ما طبوله عنوان ماه کافیه من دیگه مختصر میکنم که بختم این طور خیلی پشت بودن چون ماه که دیدن چون کاریم بله پس می‌فهمیم که ما حیثیت ما تمام موضع. بعد می‌فرماییم که از این می‌فهمیم که هیچ قیدی در این باب خالت ندارد. بعد اگر این آمد المائده بلغه قدر و کرلایین ازو شکن درست در هر و معتبر پیش ما آمده به اصل و معتبر من در بحث قر و این بحث اومد. اهل سنت به عنوان رسول الله این رو ندارند. الا ما هنگامی که از اگر تان الما خوّلاتن، اگر بران الما خوّلاتن، لامی احتمال خبر است. خوّلاتن. ولی ازش کوچک، اگر Allah که کم شده، یه راست میشه صرف خودای او کشتن های بزرگ ازش داشتی، بودیم، پایین خیلی زیاد میشود، کشتن های بزرگی. اینطوری که آب می‌دهند، برای خودشان می‌دهند. در آن ازش که تعلق می‌شه، <متصفيق> برای سخت شدن، مثلا اگر دیده باشید در فیلمان در این نبرد، تا شده. از این بخش فارسی بچه‌ها عربی ازنا دارن منظره هجر بش بودن بعد از اون خلال حجر خلال چند قله اون بزرگ کوزهای کوش اینا از این کوزای از حب حب که از حب چیکار می‌کردن از کوز لبنان خود ایران هم این زدند می توی کم شد الما اجازه ی احیال محسنون بعد یه وقتی که بر میفهمیم ما به قید کرریت موضوعه پس ما به تنهای این تمام موضوع نیست کرریت هم ولیزا ازش محکوم محسوم در... در... یعنی در آمدن اینجوریه میفهمیم که موضوع عرب تنجز دو ساس یکی این که آب باشه یکی که کر باشه اما کر نباشه فیقون و تعارض بین دلیبه هر تعارض بین دوسر دلیب مرادش از دلیب لا ما اصحب تهورم از خبیل تعارض مطلق و و چون زهور قید اقواز لذا مطلق حمد بر مقید میشه البته ایشان در اینجا گفت فرام حاله یو حمد مطلق و مقید بخاطر اما اینجا در چند سخت قبل که خوندم به خصوص خوندم و حکم و هم مطلق مطلق المقایت بعد احراز وحد در حکم حالا چون این وقت تمام میشه من راجع به اینجا یک توزیر و عرض بکنم قبل از اینکه بقیه کلماتیشون رو بخونیم اینشالا خواهد آمد به ازنانی تبارکتالا بحث بسیار محروفی از نام هم به مطلق مقایت که آگر یه این مطلق دارد و هر تقرقه مؤمنه. آیا مطلب همیقر مقاید میشه به طور طبیعی اگر ما اینطور طور و مثلا بیار آب بیار برد بیار آب ها آب گرم بیار خب این برس آب بیار آب شیرین، این برس هست آیا مطلب همیقر مقاید میشه یا میشه؟ به طور طبیعی دو احتمال همیشه در این وجه ها هستیه یکی اینکه که مفروض تماما آب باشه و هم ما گرم بودن یا شیرین بودن این جزه مطلوب نیست. این یه درجه بالاتر از مطلوبه. نه اینکه که تمام مطلوبون باشه. یعنی به وقت دیگه مغییت رو همه رو کنیم بر مسئله استقرام. مثلا آوردن آف واجبه بهتر از که شیرین باشه. مثلا افق قرقبه واجبه بهتر از که مؤمن باشه. این استقرام میگنیم یعنی که ازم هم در نصف برمایت این استقرام حسوبی شیده. اجتماع دومی که بگیم نه همون ربعه هستن مهم مومن باشه بسه استقاب نیست این غیر استقابه این رو اصطلاحا میگنن هم به بر و اون وقت در سابق بیشتر نظر به بی این بود که چون قیل ظهورش مقایی ظهورش در خالت قیل قدی کرده هم به مستقر و مقایی میشه خودشون همه بگیم اخیراً ذات اصول متقابل است و اون نهیم نگیرم. اینا متقابل ما هم زج هم به نمی واقعیت نمی‌کنیم. دلوقت بشه. ما اول باید بود اهراز وحدت مطلوب بکنه که هم به متقابل واقعیت بشه. اون نکته هم به متقابل واقعیت درسته ما هم به متقابل واقعیت می‌کنیم. اما وادی اهراز بشه که مطلوب یکیه. اما اگه اهراز شد که مطلوب دو شد یا اهراز نکردی. معلوم نیست همچنین مطلق و مواجه دائما عرفی باشه. وحذفش به طور خودش این توریس در باب واجبات و علت مطلب در باب مستحبات با تعدد مطلب لذت و نویس فوقا با در باب مستحبات با در این نیست میشه مطلق و مواجه دوباره ادامه دهیم. مثلا این یکی از سوالات لایتی مطلق. علیه الصلاة و السلام این موزه از اون معنا یعنی نماز شب 11 بعد اگر همه حمله مصطلح بر معین بکنیم واسه بگیم اون نماز شب کی که علیه الصلاة و السلام مستحب ده اما اگر همه مصطلح بر نکردیم نکرده بگیم مصطلح نماز شب واسه ذرفسان صد چهار اون درجه بالا شد درسته اینکه که ما از هم در موارد شراحند در موارد صحبا روایات مطلق مایه را حمل نمی کنیم. چون برنامه شون برای اینه که در واقع مستقبان وحدت مطلوب نیست مثلا میگه دعای شما در نماز شم در رویه قنوز از نامی در اون هفتان بار مثلا صحبا استفرالله از سفر الله بگید. هر سی بار علاقه بگیم این هر هفت در ازاده کاربرده میمون 150 بریم 200 بریم 300 میمون ما در باب مستحوا عدد که به کار برده میشه یا خیلی که به کار برده میشه این خیلی برای به اصطلاح درجات معنوی من از قروجی اصلا نمی داره ما مشکل مشه نا این دلیل مطلب توی کتاب ها هم وارد نیست نمیدونم آن بروزی نظر شد بیدیگ باشه که اصولا مواردی که ما داریم تا آراض آم با مفهوم نیست تا آراض و مقیده اصلا ما آم نداریم با محفوم با آراض نمیدار شدن که ما داریم همه از تبدیل مطلق و مقیده حالا همه چه هستم ما حالا شما باید بگن مثل مظلوم آزیا این که قبول کردیم که ما اشمال های موردی زیاد داریم اینا رو باید تو فکر حل بگنیم که ما آم می و مفهوم این از فریعه مطلب محبوب. اگر از فریعه مطلب و محیطیم بود که قومی ضابطه باید اول اقراض بشه تا همه مطلب و محیطیم بشه اگر اخراز وقت مختلوب نشد حمل مطلق برمقاید و هم در درجه استحباب لذا علمان در یه رفت یک است که ما از به جنواز اخراز وقت مختلوب هستیم این عبارتی که که که که از آنشون جواب بودن ببینید و حکمه و حمل مطلق علی مقیز بعد اخراز وقت مختلوب حالا ایشون در خوش ها رفت در حسول اخراز وقت مختلوب بعد احراز رحله الكوف كذلك مبارکیشان به این بوده که ام این عبارت اینجا بله و حيث اند ظهور الغيب يكون دخيلا عقلا من ظهور المطلق يكون تماما موضوع فلا ما حالته و ما المتع المواليه این معنایش این عقوای ظهور رو گرفتن. اگر عقوای ظهور باشه حتی اگر ما استاره باشه دیگه وارد خارج میشه این در یا من برون یا در نیجه دیگری و به جمله خلاصه بخشی که دارن میفهمن یوقت در مالوان مفهوم؟ عدر اونی که مفهوم داره و قد عرفت من نادر بابر مفاهیم این من خوده چه تیروزم عد کردم ان المخخوم اینمایی استفاد من ظهور الخیل زائب لیکن اما انهو فعلان اختیاری ایشون عقیقشون که این مفهوم به لحاظ دلالت نیست نه دلالت لحظی به لحاظ و نه به لحاظ سیاه و مقدماته این اصلا به لحاظ دلالت فکر فقله از راه فقله وارد شده حال نیست حالی مقابل و لحظ و وضع و, و اینها نداره فکر مکرده نیست این نشون میده که قیل دخیل در موضوع بعد ایشون فرمونه واقع در مستقل قدم ها ازن بیباد مکانی هیسو از تدلونه علا المفهوم به انهو لولا لکان از قیل لغبن ایشون که مستقل قدم ها همه. در لمهات که معصد اشار کرده یا ده ده که مستقل ها این نیزهر به رد آقاستون این تو ظاهرم برمایه جدی به نظر ما خیلی نبوشن به نبوده برشن و همه مطرق خودم ها این نیست اونه که انسان از مطرق خودم ها و از برمایه در میاد بخص لفظی است و بنده که حداق شد و حصول بردوم هستن و بعد هم ملخص و مزاکر ناغونا دلات قید مثل شرط و وصف و امثال بر مفهوم از قریب دلات لفظ نیست از قریب دلات فعل اختیاری یعنی من وقتی این را از این مسئله رو علماء متأخر و اصول ما نیبردن راست این اگه مرادش علماء ما نیبردن اما قدهی از علماء احل سنت اوزن در بحث ما خودموندی هم یه بحثیه این اما بین علماء ما جو نیبردن نمیسته حسول رو مثل فرسان زوابت مثل و مثل شیع و همین کسی زوابای متعارف اصولی ما در اصول ما نیست که دلات مفهوم از ما به فعل متکلمه <تصفيق> اگر مراد مرمه ها رو درست اینه این تو اصول ما نیامده اما در اصول اهل سنت محرش شده اما اینکه قدما مبنان شده نه اینم درسته مبنان قدما این نیست مثلا فعل چون فعل اختیاری خوابه که خوابه علت غایی یهمد در اینکه صدورش صدورش بخواسته علت غایی معنیت و اگر گفت خلقه الان ما اتمورن خود ما گفت ازا از ما او کرن خب این چه قایدی چه علت قایدی که آن ده پس چه نوستی آن ده ده این قصد هر متکلم از اون قایدش افاده معناش. و ها من غیر فرمین بین تمام کلام اجزای قیودی ایشون, غا... ایشون قایت ال... قایت طبیعیه حالا اگه گوزن نداره علت قاییه این علت چون ایشون نمازه کلام رو به لحاظ دلالت نگاه بکنه کلام رو به لحاظ تکنجم نگاه کرده من چرا یه بار بودم خلال دار ما هستم من یه بار بودم با عنوان فکر هم عنوان مدلوب چرا گوزن قدر کرده اگر کرده خواهر نداره چرا گفهم بزر خواهر؟ چرا گفهم حکم زیر نداره؟ اگر این ده خواهر نداره چرا گفهم حکم زیر نداره؟ اونزا پس ایشان کلام رو به عنوان دان نگاه نکردن کلام رو به لحاظ تکلم نگاه کردن من وقتی تکلم می کنم تکلم فعله هر فعلی هم علت خواهی می باز کردن از بر فکر آخر رحمه. علت غایی هستی ما هم دیگر این خیل تأثیر داره پس محفومه دخالت این خیل نخواهد وقت باشه یا شهر بله به این تلاس هم کنو حیثیت المطلب و لذایشون ولحاسه ثبوت مفهوم پیش از جهت دلالت ذکر خیل علا کونهی دخیلن فی از برای این موضوع من اونجا دیده بودم از درم کتاب لمه هاستم دیده بودم تکر بکردم ایشون قائل نباشید که در طرز تقریب آمده ظاهراً دیگهشون قائلن تحت تحریر دقیق نفرمودن اما ظاهراً قائلن راستش ایشان من این بحثم چون که بحثم اونجا در مورد کرار میگیره با فکرش شده ببینید من در بحث مفهوم هر این مرحله بحث مفهوم بحث اسباتیه آمین این توضیح رو ندارم نوشت این مرحله بحث مفهوم بحث نقشیه این دو تو با همه دیگه خلیش نشه مثلا آیه بولی وقت به قرآن مجاله بعد ترناخو از اونم توشیف کرده کسید اگر زن آلم میگه همه ایشون از این که در مقام اثباث حکم نکنن روی زی مطلمن زی آلم باقی ایشون یک قاعده دیگه گفتن تطاقق مقام سبوت و اثباث این تطابق مقام اثبات چه هست اصالت مکاتب وای و است اما ایشون از باب دلایل لفظیش اثباته آیه 15 از باب علت پای اثباته اصلا تابع تو ها. باب بییده می میگه که مقام اثبات قید زائد و هر چیزی زیاده عالی تطابق مقامش بوده اثباته غیر اختیاری این ابتدا میکنه که تو مقام وسیو هم قید بسه میشه ده در مقام اثبات که ایشون قید زرد این اختضام میکنه تو مقام سبوت هم مطلق نباشه خوبش روی وجوب اکرام روی زیده مطلق نرده زیده به قیده آده لذا من در اونجا توضیحه هم هست کردن یه درده همیشه چیزی باید مخصوم از مخصومی که این متاسفانه متاسفانه در کلمات احلام هم اشتباه شده یه درده مراده از مفهوم این جانب ایجابیه که این مثلا خب این تمامل عنوان زیک در اصل هست زید عالم مثلا یه دفعه بیا فریاد ورودی دخالت غی غی دخیل یه دفعه بحث سریه هم هست خب گفتم این غی دخیل است غیریشم نیست توجه شد آقای گروه چیزی؟ دخالت قید رو ما به علت قاییه در میاریم بسیار بحثت همه در مفهوم اگر این دوست تربیر زمان ما تربیر کنم اصلا حقیقت مفهوم دوغمیه سلویه نه دخالت رو قید اصلا حقیقت بحث مفهوم اینه لذا ایشان متاسفانه همون جانب ایجابی رو گرفتن این خیلی معصر حقوق و ما به ما و ما نرسید شد رو ما به خیلی کارویت هست بسیار این بحث مفهومی هیم داشته هست یعنی به یک منایه بگیم این مفهوم این وجودی رو داره خیلی. اگر دقتن بشیم در حالت منطوقه اگر خوب یکت از بکنیم تحلیل کلام بشیم این منطوقه باقید بلگر ما کر داره اونی که در مفهوم هست دقت بکنیم. اون جانده سلبیه من مدرسه بودن. آدمی می‌فهمد مدرسه بشه. گاهی وقت خوب متناسبی که جانمی وجوده. اصلا وقتی میخوام بگی مفهوم هست، اون جانده سلبیه. خودداری برویشی. حالا حالا سیگی مزاح خودداری میکنه. شنیدم که یک خسهر کشتگانی مدرسه تهران بشه. بله به معنا عدم قرون حیثیت المطلطان ولا یو نافی داره که انیو خلقه ها باید رو هاشم داره اما این منافی نیست که یه قیدی هم تأثیر داشته مثلا معالده و باستمان پسیر هم لایم فرنی معالده و هم لایم فرنی این منافی نداره که یک قید دیگه هم دیار این تمام بحث مفهوم همینه که منافی داره با دیگه تمام بخصه مخلوم اینه البته از کردم هم اون جانب ایجابی الان شما به از ما آیا نگاه بکنیش که اینجای توضیح نداده ما از دو درجه از مخلوم داریم یکی تأثیر ایجابی این همون سای خودی قاعدت در مخلوم رو داریست و آی بودگیدی در کل مخالی اینجا میتونیم در مخلوم اینجا گفتم یا من اشتباه اونجا فرمزن یا اینجا یک یا اونجا همینه گفتم من دقت نکردم به عدم دقیقه پس در حقیقت باز بگیم آی بروجه نه مخموم شهر کارن نه مخموم برس ایشون میگه این کلام نادر نیست که قیده دیگر نمیاد اون که میگه مخموم داره میگه قیده دیگر, دیگر نمیاد مخموم برشه اون میگه مخموم این کلام اینه که اگر کر نبود یا تنجه اصلا مخمومش اینه و لذا خوده نه به مثلی که ایشون گفتن که ظاهر در کده مقایی بگرمه اون مثلی که او استاد در باب مفهوم بست گفتن در حقیقت باز گفتی یک درجه از مفهومه اما حقیقتن در حصول اون نیست مثلا اگر گفت اگر مهمان آمد نان بخر اگر روز جمعه بود نان بخر چرا تا آرود کنه چون مفهومه کن که چون میگه اگر مهمان آمد نان بخر وژن میخواستم جمعه بخر خو با هم تا میگه سر ریچ گفته رضا خپیل الان فقط سر رضا خپیل جزران فقط سر همین اینه که تو آروزینه همینه اگه اسپاچوجی که تعرض بده که این میگه خفایدان متأسفانه میگه که واژگان ماست یه تعرض کنه درست فهمید این چون قدرت ما برای وزادان برای ایشان میشنا با این وزادون میشه با احترامی که با اینشون اگر من باید یه دو مثله نگاه بکنم بخصه محبومیشون رو اگر ایشان از از باز رو برد از علت غایی با همونتک شده ها با همونتک شده ها و باز اون شده هایی میفرماید این نقصه تندیس هایی علمی این اون مفهوم مسترح نیست دخالت قیل یا دخالت وست یه درجه از محبوم یعنی حکم مطلق نیست محدود به کلیت، خیلی خوبیه درازه. اما اینکه مانع در این، رو بعد می‌فرماید که آوند جدید انحصار در نمیاد، این نیست. نه اون آوند قدیمم که منظور تاکید، رو همرو برمی‌داره. سفر تا آوند مرقوم، سفر اون بحثا، اصلا تمام نکته راست اینه که فقط به کلیت، ادله مانع حصر یا عدم تنجس در چه صورتی اگر کورنما متنجس میشه. چه مشکلی اگر گناه باشه فقط منظره ایجابی باشه اون از جویی بحثات نداره در حیمت آیون جدی غالب نیستن اگر حل میکنن چون غالب محوم نیستن اون ایجابی محوم نیست و